زمایمه فصل ششم آزادی مطبوعات به مصابح صلاحی در برابر دستگاه تفتیش عقاید شاعر جان میلتون یکی از نویسندگان بزرگ انگلیسی همه دوران بود او از اصول آزادی بیان و آزادی مطبوعات دفاع میکرد که در کشورش اگر همیشه رعایت نمی شد لا به آنها ارزش گذاشته میشد جان میلتون در اثر مشهورش به نام آر او پاگیتیکا تلاش دستگاه تفتیش عقاید را برای کنترل آزادی بیان محکوم کرد. پاپ های روم که علاقمند بودند فرمان روائی سیاسی را در دست خود متمرکز کنند، دامنه فرمان روائی خود را بر چشمهای مردم بست دادند، چنان که پیشتر به قوه تمیز آنها بست داده بودند، آنچرا که گمان می نباید خوانده شود ممنوع ساختند و سوزندند تا اینکه شورای شهر ترانت و تفتیش عقاید اسپانیا با هم دست به کار شدند و این کاتالوگها و فهرست های سانسور را به وجود آوردند که اندرون بسیاری از معلفان خوب قدیمی را با چنان بیحرمتی زیر رو می کنند که بدتر از هر گونه بیحرمتی است که می توان نسبت به گور آنها انجام داد. آنها در محدوده مطالب بدعتگزارانه نیز باقی نمیمانند، بلکه هر موضوعی را که خوشایند زائقه ایشان نیست یا محکوم به منع انتشار می کنند یا یک راست در برزخ یک فهرست جدید می گنجانند. برای پر کردن کامل پیمانه ای این دستندازی و تجاوز آخرین اختراعشان این بود که مقرر کنند که هیچ کتاب جزوه یا روزنامه ای نباید چاپ شود مگر از طرف دو یا سه به شکنباره. تصفیه و اجازه آن داده شود. یک زندان تفتیش عقاید در روم تاریخدان ویلیام هریس رول در سال 1852 نامهی دریافت کرد از دوستی در ارتش ایتالیا که به هنگام گشودن درهای یک زندان تفتیش عقاید به روی مردم در آنجا حاضر بود. رول در کتابش تاریخ تفتیش عقاید بخشی از آن نامه را نقل می کند. محکوم را در حوزچه از آب آهک فرو می کردند، به شدت خورنده که گوشت قربانیان را در خود حل می کرد و به تدریج تا گردن آنها حوزچه را پر می کردند. آهک به تدریج آنها را احاطه می کرد یا زنده زنده به دورشان دیوار می کشید. این شکنجه و عذاب بسیار شدید اما آهسته بود. همینطور که آهک بالا و بالاتر تر تنفس قربانیان رفته رفته دردناک می شد، و به خاطر عذاب ناشی از تنگی نفس به وحشتناکترین و درناکترین شکلی جان می باختند. گاهی پس از مرگ سرشان را از بدن جدا می کردند و به داخل گودی هایی که در آهک ایجاد شده بود می انداختند.